آقا باید یک ساعت دنجی رو برای فکر کردنمون فراهم کنیم. آقا 24 ساعت داریم در شبانه روز. یه مقدارش که باید بخوابیم. حالا بعضی که میگن همه 24 ساعت خوابیم. یه مقدارش که باید بخوابیم. یه مقدارش هم که دانشجوییم با درس می‌کنیم. کارمندیم که باید کار کنیم. کاسبیم که باید دنبال کارمون باشیم. اما چقدر از این 24 ساعت رو حاضرین بذاریم بین خود و خدا خلوت کنیم؟ مگر امیرالمومنین نفرمودن مؤمن نیست مگر شبان روزش رو سه قسمت کن. یه قسمت کار و کوشش و تلاش آقایون صادقانه بهتون بگم این کلمه میخوام بگم خیلیا نمیپذیرن نپذیرن. ولی منی که اون حرفا رو با اون استدلال براتون زدم دارم این حرفا رو شما اگر صادقانه بین خود به خدا تقسیم کنید نگران برکت رزقش نباشید خدا میرسونه معتقدم اینا منطقه گاهی امتحان میکنه آقا با دویدن نیست میگه سه شیفت کار نکنم نمیشه تو طبقه معیار خدایی قرار داد بذار ببین خدا میده یا نه من نمیگم نحجل بلاغه میگه من اصلح بینه و بین الله اصلح الله و بینه و بین الناس و من عمل لدینه کفاه الله هم را دنیا نحجل بلاغه است اونتا ما حرس در آمد میزنیم خدا میگه بدو حالا حالا بدو گاهی هم در میاره خرجش هم براش میزاره می برو اونجا خرج کن حالا ولی وقتی که صادقانه میگه خدایا تو به من گفتی وقت تقسیم کن من تقسیم کرده مرموم آیتولای کمپانی رضوان الله تعالی، مرد عجیب داشت درس میداد نجفی که اومد در گوشش یه چیزی گفت شبه لبخندی زد گفت انشالله مبارک. بعد اومد یه چیزی گفت, گفت خوالا درس همون بشنیم چی میشه گفت چی بود گفت اولی اومد گفت خانمتون زایده گفت مبارک دو گفت صابخونه گفت پاشید اصاستون رو برید بیرون گفت حالا یه فکری میکنید اومد رفت تو حرم و این دست باسون گفت خدایا من متحیز آفریدی یا نه متحیز نیازمند و مکان تو تومن نیازمندم مکان خلق خودت منو و مکان خلق کردید منم کاری نمیتونم بکنم مکانو چیکار کنم از در حرم در نمیومد یکی رسید با فلان خونه خالی شده اساستونو ببرید اونجا حالا این مال یه وادی دیگه است باز منم حرفشو میزنم خجالت میکشم اما میگی مؤمن نیست مگر رو سه قسمت کنه یک قسمت برای کار و کوشیش و تلاش یک قسمت خواب و خوراک و استراحت یک قسمت هم عبادت اگر مثلا سه تا چهار تا هشت ساعت عبادت هر هشت ساعت که نماز نیست. یه مقدار عبادت همینه. لاعقل یه مقدار از وقت بهترینش سهره. بهترینش سهره. وقت نیست وگرنه یه نمونه هایی رو خدمتون میگفتم که مثلا امثال حافظ و دیگران که چقدر تاکید میکنن که ما هر چه داریم چگونه از سحر گرفتیم. بهترینش سهره. آدم یه ده دقیقه یه رو بیست دقیقه در شبان روز تو اون آرامش سهر به ویژه بین رکعات نماز شب یا بعد از نماز شب قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح خلوت کنه این آیه رو عمل کنه. تتفک کروم. ما به صاحب کن منجه. آیا پیغمبر صاحر بود؟ جن زده بود؟ که چجوری عمل میکرد؟ پیغمبر میگفت بابا خدا انتقومول الله آیه رو پیغمبر برای ما خون دیگه انتقومول الله ففر رو الالله و ابتقو وجه الله این چیه؟ برای چی پیغمبر اینا رو گفته؟ اگر یه مقدار فکر کنیم این فکر امید است که در ما اون وقت این انظار رو ایجاد کنه وای پس من چه دارم میکنم؟ من کجا دارم میرم؟ حرکتم برای چه منظور میتونه باشه؟